أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُ مِن دَابَّ آیات لِقَوْمِ يُوقِنُونَ سوره مبارک دخان را خان دیم کہ در سوره مبارک دخان دیگر از شبهات در ندای غیر الله و کمک خواستن از غیر خدا پاسخ داده شد جواب داده شد اون این بود که آنها میگفتند اگر این خدایان نتوانند حاجت ما را برآورده بکنند اجابت بکنند حداقل شفاعت و سفارش ما را پیش خدا می کنند و یا این که صدای ما را می شنوند خداوند تعالی در اون سوره فرمود که صدای شما را همه نمی‌شنوند حال در این سوره می‌خوانیم که ما میپذیریم آنها نشفاعت میکنند نش صدا میشنوند نه کاری دیگه میکنن اما ما که اونها را فریاد می زنیم، از اونها حاجت میطلبیم، از اونها کمک می خواهیم به دلیل این هست که پدران ما، آبا و اجداد ما این کار را می کردند اونها همین ها شخصیتها را، همین هستی ها را فریاد می صدا می کردند. ما هم حق ازام ما هم به طبع پدرانمون انکار رمی کنیم اگر خداوند بشنواند که بهتر اگر نشنواند حد اقل اینه که فریاد ما لغو میشه بیفایده میشه ضرری دیگری که ندارد برای ما خداوند اززوجل در جواب میفرماید از دلایل عقلی و نقلی معلوم شده که اون ذاتی که همه چیز را میداند در همه اوقات می شنود فقط و فقط الله عزوجل هست کسی دیگه این شرایط را ندارد لذا شما اجازه ندارید شما حق ندارید چیزی که خداوند به اون دستور نداده اجازه نداده شما عمل بکنید خداوند برای شما شریعتی تعیین کرده خداوند راه و روشی تعیین کرده خداوند دستوراتی داده که شما مجبورید پیروی کنید ثم جعلناك على شریعت من الامر فتبعها شما باید از اون شریعت پیروی کنید یعنی چه که شما میگید پدران ما این کار را میکردند شما حق ندارید از پدران تبعیت بکنید بس این خلاصه ای هست که در این سوره بیان میشه و در این سوره علاوه از تمهید همراه با ترغیب که در ابتدا است بیشتر دلایل اقلیه ذکر میشه دلائل اقلیه مختلف از آفاق پنج دلیل اقلی هست بر اثبات تاوید و یک دلیل نقلی وجود دارد همچنین در این سوره زجر زیاد تخویف تبشیر و غیره این سوره سوره جاسیه هست جاسیه یعنی بزانو افتادن در مباحث تخویف خدای تعالی شرایط اونها را بیان می که در روز قیامت بزانو افتاده اند و آجز ناتوانند، هیچ کاری از دستشون نمیشه. این نکته قابل توجه و قابل تعمق است به این خاطر سوره نامگذاری شده به نام جاسیه تسمیه تلکل به اسم الجز این ششمین سوره از سوره های حوامیم هست و از نظر ترتیب عرض کردم به همون ترتیبی که در قرآن هستند به همین ترتیب نازل شدن سوره مبارکه دخان 64 سوره مکی هست سوره جاسی 65 سوره مکی هست خداوند می خرماید حامیم تنزل الكتاب من الله العزيز الحكيم إن تمهيد است كيفية نزول هم هست تدريجاً كم كم إن كتاب نازل شده از جانبه ان ذاتي كهام غالب هست وهم حكيم هست كارهاش هم ربا حكمت هست و تدبير هست إن في السماوات أولين دليل هميش دلائل اما هر دلیل نسبت بدليل قزشته على سبيل ترقی حس إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين همانا در وجود آسمانها والزمين آيات حس يك نشانينا نشانات اما ان نشانات را متوجه ميشون مؤمنين اهل ايمان چرا چون انسان وقتی که توجه بکند میفهمد که علائمی هست دال بر قادر حکیم علامه آلوسی می فرماید این نا انفسهون اون که در آسمان ها مثلا ستاره هست خورشید هست ما هست در زمین چی چی هست اون اشیاء بجای خود خود آسمان و زمین خود اینها آیات است چرا لما في ها من فنون الدلاله على على القادر الحکیم جل شأنه چونکه دلالت دارد خود همین زمینی آسمان واقعا زمین و آسمان یک نظم خاصی دارد که این نظم زندگی کردن برای ما انسانها را آسان کرده، نه برای انسانها برای حیوانات، برای پرندگان، برای حشرات. چنان زمین و آسمان با همدیگر مرتبط هستند دوربر همدیگه میچرخند که حرارت انرژی گرما. نور همه اینها ایجاد میشه و زندگی را آسان کرده پس انواع دلالتها هست همه اینها دلالتی نخواهد بود مگر بل اینکه یک ذاتی که هم قدرت دارد و هم حکمت دارد اینجا این قدرت را اداره می کند و فی خلقی کم این دلیل آفاقی بود حال دلیل انفسی و فی خلقکم در وجود خود شما پیدایش خود شما هر یکی از اینها الان بسیاری از چیزهایی که در آسمانها و زمین هستن ما دیدیم به اونها پی بردیم بشر به علم اونها رسیده بسیاری دیگه هستن که نرسیده روز روز کسانی که رسد میکنن دنبال میکنن به بی عجائب بیشتری پی برند روز بروز عجائب زمین و آسمان بیشتر مشخص میشه. بس معلوم میشه که آیات زیاد هستند در زمین و آسمان و همچنین در خلق خود انسان انسان هم عجیبه کسانی که انسان را مطالعه کردن کسانی که درباره انسان تحقیق کردن کسانی که درون انسان رفتن چه پیچیدگی هایی چه دستگاه هایی چه پیشرفتی خداوند اول انسان را اعضا داده این اعضا چشم هست گوش هست زبان هست قوت شامه هست قوت لامسه هست باز بقیه دستگاه هایی که در درون هست قلب هست کبد هست کلیه هست میده هست هر یکی یک کاری مشغول هست هر یکی به صورت اوتوماتیک و خودکار شب و روز فعال هست نه خسته میشه نه مشکل دیگری براش پیش میاد لیزا اینها اگر انسان فکر بین اینها همه آیاتند همه دلالاتند بر قادر حکیم جل شانه و فی خلقکون و ما یبث من دابه و اون چیزی که از دواب منتشرا در زمین چقدر حیوانات هستند دابه هر زیرور را میگویند همه اینها آیات لقوم یوقنون آیات هستن برای قومی که یوقنون یقین دارند یقین دارند به ذات پروردگار مستفیدین من الآیات گرچه انسان ها اکثراً خدای عز را قبول دارند به خدا ایمان دارند گرچه نوع ایمان فرق دارد ولی همه این کائنات گاهی انسان عجائب زمین را می میبیند و عجائب جنگلها دریاها دریا ها فیلم های مستند و آغین انسان چیزهای می که قبلا تو خواب هم ندیده بس یک آیه آیات لقوم یقنون همچنین و اختلاف لیل و النهار اختلاف شب و روز که دیروز در بارش بحث کردیم چه منافعی چه آرامشی چه نظمی ایجاد می کند ما انزل الله من السماء من رزق آنچه که خدا از آسمان نازل می از رزق یعنی سبب رزق سبب رزق تیه باران هست از آسمان نازل می شه ف احیا به الارد بعد موتها زمین را بعد از مردن و بعد از خشک شدنش زنده می کند و همچنین تصریف ریا گشتن بادها ها این بادها بظاهر زرار دارد منافع اینها خیلی بیشتر هست همه و همه آیات لقومی یعقلون آیات حس برای قومی که عقل دارد معلوم میشه برای اینکه انسان به خدا برسد هم عقل لازمه هم یقین لازمه هم ایمان لازمه للمومنین لقوم یوقنون لقوم یعقلون اینکه خداوند جل کلمات متفاوتی آورده فقط برای رعایت سجع و وزن و قافیه نیست بلکه اینها هر یکی یک بیانگر یک نکتی هست لذا بعد از این که خداوند بعضی از این آیات که هم آفاقی بودند هم انفسی بودند بیان فرمود می فرمد تلک آیات الله، این آیات آیات الهی هست نشاناتی هست که دال بر قدرت پروردگار هست نتلوها علیک بالحق ما آنن را تلاوت می بر تو حق تلاوت میکنیم. تلاوت می کنیم بحق یعنی هازه آیات الله حججه و براهینه الدال لعلا وحدانیته و قدرته این همه آیات دلالت هم بر قدرت خدا داره هم بر وحدانیت خدا انسان ها واقعا اون انسان هایی که با خدا شریک می سازند خدا را قبول دارند شریک می سازند از اقل فارغند از اقل بدورند چون این آیات برای یعقلون اونا هم عقل ندارند هم یقین ندارند هم ایمان ندارند للمؤمنین لقوم یقینون لقوم یعقلون چرا؟ چون که از همین افرادی که ازشون استمداد میکنند کمک میگیرن کدوم یک از اونها این تصرفات را دارد این قدرت را دارد در این کارخانه عظیم نقشی و شرکتی دارد پس همه اینها تلک ایت الله نتلوها عليك بالحق آیه ای از این آیات بزرگتر خواهید نشانی از این نشانات بزرگتر خواهید مشرکین گاهی میگفتند که ما ایمان نمی آوریم تا آیه ایمان نشون بدی آیه مثلا چیه به طور مثال از یک سنگ شطری را چون از حضرت صالح همین را از یک سنگ چطور بیاد بیرون از کوز چطوری بیاد بیرون یا مثلا عصای انداخت درخت موسی علیه صلاتو تبدیل به اجدها شد این آیه در مقابل آیاتی که خدا اینجا بیان کند چیزی نیستن این آسمان را نگاه کن گم میشی انسان نگاه میکنه خسته میشه بعد چشمش رو پایین میگیره دوباره نگاه میکنه از بس که این عظمت داره أز بس كأز توانو قدرت مني ضعيف بالترهست لذا الله ميفرم فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون إن آيات إلهي هستند إن آيات ركسي ديدو إيمان نيا ورد إن وغن نهايته ما قتست بچش سخنی یعنی بچ آیه بعد الله یعنی بعد حدیث الله بعد سخن خدا و بعد از آیات خدا اینها ایمان میآورند بس اینها ارزش ایمان داشتن را ندارند لایق نیستند با وجود این همه آیات اینها دروغ میگویند افک می گویند ویلن لکل افاک اثیم حلاکت و تباهی برای هر افاک افاک که زیاد دروغ میگوید در افک و در دروغ مبالغه می یکی از کفار مجادلین بالحق زیاد بودند با حق و با آیات خدا اونها چی می کردن جدل می کردن. اما یکی از اونها نظر ابن حارس هست بعضی از مفسران می اینجا اشاره به نظر ابن حارس هست وقتی که می که مردم از آیات الهی متاثر می شوند می با قرآن مبارزه بکند او گفت که بیایید دور باری من جمع بشین من برای شما از داستان ها و قصه ها و افصان های عجم تعریف میکنم لگه دروغ می بافت دروغ دو و اکثر داستان ها دروغ هستند در مقابل قرآن اونها را بیان کردن ویل لکل افاکن افین خیلی ها هستند در زمان ما هم هستند که میخواهند مثلا مردم با قرآن مشغول نشوند چون که کسانی که با قرآن مشغول بشن خصوص اهل ایمان و اهل غیرت جوانان با غیرت اگر گرویده قرآن بشوند اون وقت برای خدا برای ایمان همه چیزشون را فدا میکنند قرآن انسان را انقلابی درست میکنه قرآن انسان را مجاهد درست میکنه قرآن انسان را مؤمن با ایمان واقعی درست میکنه. وقتی که یک مسلمان مؤمن واقعی باشد خب مسلمه او مداحنت نمی کند او ظلم را تحمل نمی کند او کفر را تحمل نمی کند اون وقت خواب از چشمانه مستکبرین می پرد این خاطر در مقابل قرآن همیشه سعی است که مردم را مشغول کند الان داستان های نظر ابن حارث امروز در غالب فیلم ها هست در مقابل در غالب سریال ها هست در غالب از کنم سرگرمی های دیگر هست شما ببینید چقدر مردم امروز سرگرم هستند این قدر سرگرم هست بالخصوص جوانان ما این موبایل که به دستشون هست این قدر سرگرم هستند که اصلا اگر کسی باشو صحبت بکنه وقت جواب دادنش را ندارنه همین چند وقت پیش بنده رفتم چابهار یه چیزی بگیرم چابهار بودم رفتم بازار یه چیزی بگیرم یه قسمتی رفتم صبح بود تمام مغازه ها دیدم همه نه ولی اکثر جوان بودند مشغول موبایل بوده همه بازی میکردند اونجا تعجب کردم سبحان الله اینها را چقدر غافل کردند اینها میتونیم به جای این بازی اینجا اولا جواب خوبی به مشتری بدن و بعدا یاد خدا بکنند تلاوتی بکنند، همه اینها مشغول بودند چیزی میپرسیدی سر بالای جواب میدادن، اصلا فرصت جواب دادن نداشتند کاری که به خودشون هم بود، یعنی اینو میخوام میخواهم کنم که در مقابل قرآن همیشه دشمنان سعی میکنند مبارزه بکنند مسلمانان را به نوعی مشغول بکنند با سرگرمی ها مشغول بکنند بعضی همین سرگرمی ها چنان سرگرمی هایی هستند که به جای باریک کشیده میشه بسیاری از افراد و بسیاری از جوانان خودکشی میکنند بسیاری عصاب و روانشون خراب میشه دیوانه میشم میکنند. خیلی چیزی هست که امروز ثابت شده تحقیق شده. و خیلیها هستند که مشغول هستن با فیلمها با داستانها با یک سریع از به خدمت شما سرگرمی هایی که از دین و ایمان و قرآن فاصله بگیرند. همون کاری که این افاق کرد فاق های امروز کسانی که امروز دروغ می بافند، و می مردم را مشغول بکنند از قرآن منحرف بکنند همین لذا الله می فرماید ویل لکل افاک افین برای هر اون افاک و دروغگو گناهکار چون این دروغهاش بر اساس گناه و معاصی هست اسمعوا آیات الله تتلو علی آیات الهی را میشنود که بر او تلاوت میشه ثم یسر مستکبرا سپس اصرار میکند بر همون کفر و شرکش در حالی که تکبر میکند کالم یسمعها گویا چیزی نشنیده فبشر به عذاب الیم این را بشارت بده به عذاب دردناک این نتیجه دوری از قران است عذاب دردناک وگاهی اياتي مشنوت به باد مسخره ميگيرد و اذا علم من اياتنا شيئا اتخذها هرگاه از ايات ما چیزی مشنوت بجای تسلیم تسليم ايات اونها رب باد مسخره میگیرد. اولئك لهم عذاب مهين این افراد برایشان عذاب ذلت بار هست، عذاب ذلت بار عذاب خارکننده اون عذاب مهین چیه؟ تعین عذاب. من ورائهم جهنم ورائی اونها اون طرف اینها یعنی بعد از این دنیا ورا این دنیا آخرت هست دیگه بعد از مرگ هست ورائیشان جهنم هست وَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ مَا كَسَبُو شَيْعَا نَفِ شَفَاةِ غالب اینها اگر دل خوش کردن دل گرم هستن بچی به چی یه سری الهی باطل خدایان کسانی که برای آنها نظر و نیاز دادند کسانی که برای آنها سجده و تواف کردند اونها هیچ شر را از اینها دفع نمی‌کند ولا یغنی عنهم ما کسبوا شیئا دفن نمی کنند دور نمی کنه از اینها آنچه که کسب کردند یعنی اعمال مشرکانشان هیچ چیزی را ولا متخذو من دون الله اولیاء و نه که بغیر از الله آنها را حامیان خود انتخاب کردند آنها را مشکل گوشا و حاجت روای خود انتخاب کردن یعنی اون آلیهی باطل اون معبودان باطل هیچ کاری برایش هم نمی کنن وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ برای انها عذاب بزرگ هست لذا راه نجات چیه راه خلاصی و رهائی چیه رب می فرمد هادا حدن این قرآن ادایت است کسی نجات می خواد قرآن ادایت است قرآن او نجات میره یا حاضا هدن جمیع ما زکره بعضی مرجع حاضا جمیع ما تمام ان دلائل که دلائل توحیدیه بود انها هستن نجات انها هستن هدایت اما برنامههای های این کفار برنامه‌های نظر ابن حارس نجات نمیدن انا عذاب می‌آرن والذین كفروا بآیات ربهم لهم عذاب من رجز الیم کسانی که کف کردن نسبت به آیات ربشان برای آنها عذابی هست من رجز از نوعی سختش که دردناک است رجز عذاب سخت رمیگوین الله الذی سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بامرِه. این دلیل دیگری هست. بظاهر ادامه همون دلیل است اما این على روی ترقی هست. موارد گذشته هم تکرار میشه، یاد میشه اما چیزهای جدیدی هست الله عز و جل میفرما: الله الذي سخر لكم البحر خداوند آن ذاتی هست که برای شما دریا را مسخر کرد تا قرار داد خداوند به ما انسان امکاناتی امکانات عطا فرمود من جمله اون امکانات همین لنچ و همین کشتی و همین امکاناتی که ما به وسیله اونها در دریا می توانیم که از دریا راحت برای خودمون رزق روزی فراهم بکنیم سخرا لکم البحر لتجری الفلکو فیه به امره تا که کشتی جاری بشه به امر خداوند در دریا ولتبتغو من فضله تا که فضل خداوند و رزق خداوند را شما از طریق دریا حاصل کنیم ببینید رزق تنها یک چیز نیست خداوند این دریا را دریاها ظرفیتی بسیار بزرگ برای کسب رزق قرار داده شما ببینید اکثر بلادی که در کنار دریا هستند اون بلاد بلاد آبادی هستند از نظر تجارت، از نظر بازار، از نظر کسب و کار حرف اول را می زنند کشورهایی که دریا دارن، این کشورها غنی ترین کشورها هستند مردمی که در کنار دریا زندگی میکنه الان کار ندارین که نسبت به مردم ما اجحاف های شده اینها از حقوقشون عقب موندن ولی عموما مردمی که در کنار دریاها زندگی میکنن این مردم از نظر رفاهی از بقیه مردمی که دریا ندارن خیلی در رفاه هستن اینها سرمایه‌هایشون بیشتره اینها پولهایشون بیشتره چون دریا را خدای عزوجل جای کسب و جای رزق و پول آوردن قرار داده. اینکه از دریا ماهی گرفته میشه که یک رزق بسیار مفت و رایگانی هست این به جای خود دریاها عامل بزرگترین وسیله حمل و نقل هستن به وسیله دریاها و کشتیهای پیکر و کشتیهای بزرگ بزرگترین بارها جا به می شوند بارهایی که شش ماه شاید طول بکیشه فقط بار بزنند شش ماه طول بکیشه بار تقریه بکنند از دورترین نقاط به دورترین نقطه های دنیا به وسیله همین دریا هستند در دریا خداوند اززوجل انواع مرواریدها را انواع یا قوتها را انواع جواهرات را اینا را در, در دریا قرار داده در دریا خدا تعالی در زمان ما نفت را قرار داده که بزرگترین تلاح هست بزرگترین از کنم سرمایه ارزشی هست برای یک کشور برای یک منطقه و مردم و خدا می دونه دیگه چه منافع دیگری که در آینده بشر به اونها برسد لذا همه اینها از طریق دریا انجام میگیرد گیرد لتب تغو من فضلهی فضل پروردگار را رزق خدا را از این طریق حاصل کنید و لعل تشکرون این انتظار رب است تاک شما شاکر باشد شکر گزار باشید. ناسپاس نباشید و نتنه دریا و سخر لکم ما في السماوات و ما في الارد مسخر فرمود برای شما یعنی برای نفع شما تمام آنچه که در آسمان است و آنچه که در زمین است، جمعاً منه، همه اینها از جانب الله منه یعنی، این نذالک فعله وخلقه و خلقه و منه. اینها را خدا انجام داده، خدا آفریده احسان پروردگار هست. في ذلك لآيات يتفكرون در همه اینها آیات و نشانات هست اما برای هر کسی که سمون بکمن رد میشه نه برای قومی که میاندیشن برای قومی که تفکر میکنن تفکر واقعا یک عبادتی هست و چه تفکر از بعضی عبادت های نفلی هم اجرش بیشتره چون انسان با تفکر به عظمت پروردگار میرسد و به احسانات پروردگار تفکر باعث تشکر میشه تفکر باعث این میشه که انسان به توحید خدا پی ببرد انسان به ایمان واقعی پی ببرد لذا الله تعالی هم تشکر میخواهد هم تفکر میخواهد لعلكم تشکرون لقوم یتفکرون كل الذين امنوا يغفر للذين لا يرجون ايام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون خب سوره سوره مكي هست هنوز جهاد نازل نشده دستور صادر نشده وقتی که این آیات آیات توحید و آیاتی که دال بر توحید هستند گفته می شود، اینها نازل می شود، اینها تشری می شود و از طرفی مشرکان استحض می کردن، مسخره می کردنن به جای شکر، کفر و شرک. این باعث می شود که مسلمانان خیلی ناراحت بشن، احساساتی بششن برخوررد بکنن خداوند میفرماید، بمؤمنين بيغيت كشما شما فعلا در غزر قل للذين آمنوا يغفرو للذين يغفرو بقول الله مالوسي يعفو ويصفهو معافكونا در غزر باشد للذين لا يرجون ايام الله انها اعتقاد بأيام الله ندارا لا يرجون يعني لا يعتقدون ايام الله يعني روز قيامت انها بقيامت اعتقادي ندارا فعلان ازین در گذر باشه بزری خدا خودش به کیفری اعمالشو میرساند لیجزی قومم به ما کانو یکسیبون تا خداوند پاداش بده جذا بده به کیفری اعمال برساند. اون قومی را که بد عمل میکنن به ما کانو یکسیبون به سبب کسب و عمل کردشان. اما قوم میتواند لیجزی زی جذا باشد جزای نیک. جزا بد هر نیک عمل میکند خدا بهش جزای نیک بده هر کی بد خدا بد عمل می... بهش جزا میده چونکه که من عمل الصالحا نفسی. هر کسی عمل صالح و نیک انجام میده به نفع خودش هست و من اساءه هر کسی بد عمل میکند فعلیه ثم الى ربکم ترجعون بعد از عمل به سوی ربتان شما برگردانده می شوید خب این دو تا دلیل عقلی بود شما خواندید اولین ان فی السماوات والارض ومی الله الذي سخر لكم البحر بعد از این دلائل ارض کردن پنج دلیل عقلی تو این سوره هست و یک دلیل نقلی در لا بلا این دلایل عقلی دلیل نقلی هست این دلیل نقلی در این دلیل نقلی یک نمونه برای منکرین قرآن بیان میشه ببینید کسانی که قرآن را قبول ندارید ما برای موسی هم کتابی شبیه این کتاب نازل کردیم و کسانی که اون کتاب را قبول نکردند نتیجه چی شد؟ ولقد اتينا بني اسرائيل الكتاب والحكم والنبوة هم اناءداد ببني اسرائيل كتاب داديم حكم داديم حكم يعني اسكنهم حكومه قدره امكانات اماديه والنبوة ديني معنوي اولی مادی از دومی معنوی کتاب در هر دو جهت راهنمایی می کند. هم در جهت معاد و هم در جهت معاش. هم در جهت دین و هم در جهت دنیا. و رزقناهم من الطیبات بیانان رزق دادیم از انواع طیبات مالهای های سے و فضلناهم علی العالمین این پنجمین هست. اولین کتاب دومی الحکم سومی النبوات چهارمی و رزقنا من طیبات پنجمی جایگاه و عزت فزیلت بر عالمیان عالمی زمانهم عالمیان زمان خودشون در اون زمان بهترین ها اسرائیل اسرایل بودن چون پیغمبر داشتن کتاب داشتن توحید داشتن و آتیناهم بینات من الامششم و اعتیناهم بینات بآنام بی بینات دادیم بینات یعنی دلائل واضح و روشن من الامر ای امر دین والبینات الدلائل ويندرج فيها معجزات موسى یعنی معجزه دادیم به موسی دلایل دیگری که موسی دلایل اقلیه که موسی برای اونها بیان میکرد همه اینها را ما به بنی اسرائیل دادیم اما ببینید بنی اسرائیل چگونه ناساکر شد ناسپاس شد شما مخاطبین قرآن مثل اونها نباشید خداوند به شما هم همون نعمت ها هم معنوی داده هم مادی داده فمختلفوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم اختلاف را کی انداخت کی انداخت چرا انداخت اختلاف کسانی که عامل اختلاف بودند ملها و آخندهای دین فروش چرا من بعد ما هم العلم هن که بعد از این که علم داشتند می دونستند اما به خاطر مادیات به خاطر شکم به خاطر این که سفره خوبی پهن بکنند برای خود و امثال خودشون تحریف کردند در دین و بخاطر حسادت باغم بینهم فمختلفوا اختلاف نکردند الا من بعد ما جاءهم العلم مگر بعد از اینکه علم آمد پس معلوم میشه اختلاف کنند اهل علم بودند دانایان بودند چرا اختلاف کردند باغم بینهم بعضی وقتا مردم مردم که مردم عادی که یک آیه میشنوند از قرآن و می بینن قران چه اندازه واقعا حق را روشن و واضح بیان فرموده هر کسی که ذره عقل سلیم داشته باشه قانع میشه باز همین مردم اعتراض میکنن میگن این این ما که اینقدر درک میکنیم میفهمیم این دانشمندان اینهایی که افراد باسواد اصلا اینهایی که ادعا میکنند، همه چیز را میفهمند. اونها چرا این دلایل را نمی بینند میبینند. می بینند بنی اسرائیل می دید. ولی خداوند میفهم فهمند هم بین هم بین آنان و بین دعات توحید حسادت است حسد و بغض که اونها ایمان بیاورند خب نتیجه چی میشه؟ خداوند میفرماید، می, خداون می در دنیا خداون هم خیلی بنی اسرائیل را داد. در سوره بنی اسرائیل میخوانیم که لا توسدون نافل الأرض مرتين و لا تعلون علوا کبیره فاذا جاء وعد الههما بعثنا عليكم عبادا لنا اولی بس شدید فجاسوا خلال الدیار خداوند در اوز این اختلافات در اوز این دین فروشی پادشاهان ظالم و جابر و متمردی مثل شاه فردوس مثل عمالقه مثل پادشاهان دیگر بر اونها مسلط کرد هر بار که می آمدند هزاران را می کشتن، هزاران را اسیر می کردند مسجد و بیت المقدس را با خاک یکسان می کردند و می رفتن. هر بار می آمده همین پس خدا تو دنیا هم گشمالی کم نداد مفسرین و جنوشتن هشت بار بدترین یورش ها بر بنی اسرائیل آمده هشت بار اما در آخرت أصل فيسل أوني أصل أزاب أوني إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون همانا رب فيسل يكون أمالا در روز القيامة در آن شكون ها در آن اختلاف ميكردند ثم جعلناك على شريعة من الأمر حال بعد اسبنية استرائيل ببينيت بنی اسرائیل کتاب دادیم حکم دادیم نبوت دادیم رزق دادیم فضیلت دادیم دلائل دادیم شش چیز بودن به شما هم اینا را دادیم ثم مجعلنا که على شریعت من الامر شما را بر شریعتی از امر گذاشتی این موضوع سوره هست ارز کردم در ابتدا این شبه سوی مشرکین مطرح می شد که خب اگر خدایان ما معبودان ما صدای ما را نمیشنوند شفاعت ما نمی کنند پدران ما این کار را می کردند اینها را صدا می زدند ما هم صدا می زنیم خداوند میفرماید شما اشتباه می کنید شما یه شریعتی دارید خدا برای شما شریعتی فرستاده راه و رسم زندگی فرستاده قانون و آین زندگی فرستاده که شما باید از اون پیروی کنید شما چرا اون شریعت را نادیده میگیری؟ سپس ما تو را قرار دادیم بر شریعتی یعنی بر یک طریقی مسلوکه و بر یک روشی که از سوی خدا تعیی شده من الامر از امر دین که در این شریعت هم مسائل اعتقادی هست هم عملی هست هم اخلاقی هست هم معاشرت هست هم معامله هست همه چیز تو این شریعت هست فتبع اون را پیروی بكن ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون كَسَانِي نكن اهواء کسانی خواهشات کسانی که نمیدانند یعنی جاهلان اینا دوست مثل اونها در جای دیگه الله میفرما ولا تتبعوا اهواء قوم من قبل واضلوا كثيرا عن سواء قومی که خودشون هم گمراه دیگران را هم گمراه کردند از راه راست گمراه شدند بله انها چی می گفتند را وقتی که بسوین شید دعوت می و اذا قیل لهم تعالو الى ما انزل الله قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباعنا پدران من را یا همون کافی هست اولو كان ااءهم لا يعلمون شيئ ولا يحتدون آیا پدرانی را اینها تبعیت میکنن که جاهل بودن هیچ چیزی نمیدانستن بر هدایت نبودند. لذا الله می ولا تتبع. اهوا الذين لا يعلمون شما پیروی نکنید خواهشات اونها را که لا يعلمون دانند جاهل هستند انهم لن يغنوا عنكم من الله شیئا همانها انها انها هرگز نمی نمیکنه از شما از خود از خدا یعنی از عذاب خدا چیزی را شما خدا را پیروی کنید خوب توجه بفرماید کسانی که امروز شریعت را بدست دارند ثم جعلناک على شریعت من الامر فتبعها وقتی که برسول الله خدا میفرماید شما دنبال روی شریعت باشید، پیروی شریعت باشید. امروز شما اولمای دین، شما که وارثان رسول الله هستید، این خطاب متوجه شما هست. شما هم پیروی شریعت باشید. اگر یک حاکم جاهل، اگر یک پادشاهی به خاطر منافع خودش، منافع سیاسی، منافع دیگر، از شما انتظار دارد که انتظارش خلاف شریعت است. انتظارش خلاف عقيدت هاس خلاف الدين هست خلاف فقه هست حتى شما شريعت را اتباع فاتبعها ولا تتبعه والذين لا يعلمون إن آية فقط درباره رسول الله نسك ابو جهل را اطاعت نكون اگر ما قرآن را انگونه تفسير بکنیم پس قرآن شد ماله هزار سال پیش امروز اگر ما مصداقی از اون زمان بیان میکنیم برای اینکه آیه را بفهمیم حال شما بیار آیه را با زمان خود تطبیق بده با شرایط خود, خود تطبیق بده الان امکان داره که شما در شرایطی باشید که یک حاکم از شما بخواهد شما دین را احکام دین را یا بعضی از عقائد را بعضی از مسائل را طوری توجیه کنی که با سیاست او زیاد در تضاد نباشه با قانون اساسی که او از کرده زیاد مثلا از شما انتظار داشته باشه که در امر توحید یک مقداری تساهل نشان بدی یا در امر عرض کنم که معاشرت، ارتباطات ارتباطات با دشمنان اسلام یهود و نصاره یا شما انتظار داشته باشد در رابطه با نماز در باره حجاب در باره مسائل دیگر که یک حکومت میخواهد در اونها نرمش ایجاد بکند شما وظیفه چیست؟ ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبعه الذين لا يعلمون شراء چونك إن آقاء إن حاكم إن پادشاء إنهم لن يغنو عنك من الله شيئا خدا اگر بخات گرفتارت بكونه إنهم تنترى عذاب خدا نجاد تو خدا اترى رازي كون شراء خلق رازي ميكونه إنهم لن يغنو عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض یک مفتی را سخنرانی را کلیپش رادیدم شنیدم که در یک جمعی سخنرانی می کند به خاطر رازی کردن همون حاکم خودش یک مفتی, مفتی رسمی بود که از طرف یک حکومتی اعلام شده بود در جمع مسیحیان همون کشور نشسته تمام زنهای نیمه اوریان و بلا تشبیه اوریان جلوش هستند این نشسته و آیات قرآن را طوری می خاند آیاتی که درباره باره مریم و ایسا هست و میگه که تو اون سخنرانیش می خواد اونها را خوش بکنند اونها را راضی بکند طوری صحبت میکنه دین شما تایید شده ی قرآن ماست قرآن اینقدر از مسیح تعریف کرده قرآن اینقدر از مریم تعریف کرده از ارز کنم که پاکی و تقوای مریم تعریف کرده و غیره خب اونجا الان دستور قرآن درباره اونها چی هست این نمیگه میخواد همونطور که بعضی معتقد هستن معتقد هستن به ارز کنم وحدت ادیان همه ادیان با هم وحدت داشته باشه هر دینی عمل بکند بر است مسلمان به جای خودش بر است یهودی به جای خودش بر است مسیحی به جای خودش بر است بودایی همه را باید بر حق بدانیم خیلی از مدارانی ما همین همین عقیده را دارند الان اکثر این رجال سیاسی بر همین اعتقاد هستند این مفتی صاحب که علم قرآن را دارد او همین را داره میگه همین را داره وانیمود میکنه که یعنی شما هر روشی امروز دارید هر فسادی میکنید سال یک بار میره کلیسا پاک میشی از گناه شما درست عمل میکنی منیش اینه دیگه ولا تتب اهوال الذين لا يعلمون چونکه وقتی خدا مؤاخزت بکنه انهم لن يغنو عنك من الله شيئا اي ايمن عذاب الله شيئا وقتی که عذاب خدا بر تو بیاد اینا هیچ چیزی از نمیکنند و ان الظالمين بعضهم اولیاء بعض این ظالمان بعضیشان مشرکان حامیان هم دیگه هستن شما مؤمنین چرا والله ولی المتقین حامی شما ای اهل تقوا ای اهل ایمان ای کسانی که از کفر و شرک پرهیز میکنید، حامی شما خدا است شما در هر صورت مد نظر چی باشد رضای خدا باشد رضای پروردگار باشد لذا ما راه حق را و مسیر حق از کجا پیدا بکنیم هذا بصائر للناس خداون می فرماید این قرآن هذا بصائر للناس بصائر بمعنی چیه؟ وسیله هدایت و روشنی این قرآن وسیله چی هست؟ هدایت و روشنی شماست روشنی دنیا و آخرت وهدم ورحمة لقوم يقينون خدامة شيء أو صافي بره القرآن بيان ميكند هدايته هدايته اعتقادا ورحمة عملا لقوم يقينون بره قومك يقين ميكند يقين دارا بقرآن بكتابه خداح أم حسب الذين اجترحوا السيئات حال خداون می شما مؤمنین با مشرکین برابر نیستید نه حیاتی شما مثل حیاتی انهاست نه مماتی شما مثل مماتی انهاست لذا فاصله بگیری صفتون را جدا بکنید ام حسب الذين اجترحوا سیعات آیا می کسانی که گناه کسب کردن سیئات کسب کردن ببین در رأس سیعات شرکه هل مجرن بغي سيات ها كذا آية انها فكمي كنن ان نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات ما انها را قرار مذيم مثل كسانك ايمانا وردا وعمل صالح انجام دادان فكمي كنن مثل همن سواء محياهم ومماتهم حياة انها موت انها برابرست نخير ساء ما يحكمون بد قضاوت میکنند، بد حکم میکنند، بد فیصل میکنند. هرگز حیات کافر و حیات مؤمن مثل هم نیست، ممات کافر و ممات مؤمن مثل هم نیست. اینا هرگز مثل هم نیستن چه فرقی دارند؟ معنای ی آیه چی هست؟ الله منصفی عبارتی دارد زیبا هست. اون بخوام. وَالْمَعْنَا اِنْكَارَ ان يَسْتَوِيَ الْمُسِعُونَ وَالْمُحْسِنُونَ قرآن انکار میکنه خداون انکار میکنه اینکه انسانهای موسی و بد موسی چه مشرک باشه چه کافر باشه چه منافق باشه چه فاسق باشه اینکه انها برابر باشن با محسنون محسنون اهل احسان یعنی اهل اخلاص اخلاص اولین درجه اخلاصی قبلا گفتم فقط خدا را عبادت کردن و عبادت اطراف فقط برای خدا انجام دادن این اخلاص پس در رأس اخلاص توحید است به همین خاطر سوره اخلاص سوره توحید یکی است قل هو الله و بعد تمام اعمالی که خداوند دستور فرموده همه را انجام دادن پس این آیه انکار می کند که ان یستوی المسیعون والمحسنون اینا برابر باشن محین از نظر زندگی و ان یستوو مماتن و بعد از مرگ هم برابر باشن نه خیر هیچ وقت برابر نیست ببین فرقشون چیه ل افتراق احوالهم احیان چونکه در زندگی احوالشون با هم متفاوته کسانی که اونها چی هستند؟ مؤمن هستند حیث مات ها اولای علی البشرا بررحمه مومنین مردند از این دنیا رفتند در حالی که مجدی رحمت خدا متوجه اونها هست و مات ها اولای علی البشرا بررحمت والکرامه وَأُولَئِكَ عَلَى الْيَأْسِ مِنَ الرَّحْمَةِ وَالْنَدَامَةِ أما أنها ببخشيد أول أحوال, أحوال ما ما تنبود أحوال ما حيار نقف تم لإفتراق أحوالهم, أحوالهم أحيان حيث عاش هؤلاء على القيام بالطاعات وَأُولَئِكَ عَلَى اَقْتِرَافِ السَّيِّئَاتِ مؤمنين هميش طاعت مشركين هميش سيئات انها هميش عبادت والسجده انها هميش شرق و كفر بس محيان فرق دارن باهم ديه وما ماتن چيه حيث مات هؤلاء على البشرة بالرحمة والكرامة مؤمن كميميرد خبرية رحمة وكرامة متوجهش هست ومشرك كميميرد وأولائك على اليأس من الرحمة والندامة لذا این به با هم برابر نیستند. آیا فکر میکنند سوائم محیاه و مماتم سا اما یحکمون. بد فکر میکنند. پس این بود عرض به خدمت شما شریعت و قرآنی که خدا نازل کرده همه مؤمنان همه انسان ها موظفا طابعی این باشند. نتابع هوا و حواس نتابع شیطان نتابع سنادید کفر شرک و خلق الله السماوات والارض بالحق سفومین دلیل است از دلائل پنجگانه خداون آسمان و زمین را آفرید برای حق برای اظهار حق برای اظهار حق برای چیزی دیگه نه آفرید خیلی مردم روایت هایی درست کردن در هر مذهب این افراد هست، تندروی هست مسیحیان میگویند آسمان و زمین به خاطر ایسا و مادرش پیدا شده مسلمانان میگند آسمان و زمین، مسلمانان باز دو گروه هستند شیش میگه آسمان و زمین به خاطر علی و فاطمه خلق شده و سنتی میگه آسمان و زمین به خاطر محمد صلی الله علیه وسلم خلق شد. در حالی که اینجا هم میخانید که و خلق الله السماوات والأرض بالحق در اول سوره احقاف میاد ما خلقنا السماوات والأرض و ما بین الا بالحق همین هر حق فریدی لذا إن رواياتها رأى مردون درست لولا عيسى لما خلقت السماوات والأرض لولا علي لما خلقت السماوات والأرض لولاك لما خلقت الأفلاك قلت إن رواياتها روايات زائفية خداوان آسمان الزمين رأى بخاطر عبادتش بخاطر وحدانيات بخاطر إنك حق ظاهر بشي وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون لذا و خلق الله السماوات والارض بالحق به ما آفریدیم این آیه را چند بار شما خاندید ولی تجزه کل نفسیم بما کسبت تا که پاداش داده بشه هر نفسی اونچه که کسب کرده و هم لا یظلمون آنها ظلم نمیشوند شوند بر انها یعنی مورد ظلم واقع نمی شوند با انها عدالت میشه. خب ببینید پس هدف پیدایش آسمان و زمین حق است اظهار حق است اما اون کسی که بجای تبعیت از صاحب آسمان و زمین بجای فرمانبری از خالق آسمان و زمین از نفسش فرمان میبرد، از شیطان فرمان میبرد. نفس خودش را الهش خرار داده خداوند میفرماید. اون انسان دیگه محروم از هدایت مهر جباریت بر قلبش خورده اون هیچ وقت دیگه هدایت نمیشه افرائیت من اتخذ اله هوا آیا بمن خبر بده اون انسانی که گرفته اله خودش هوا را ای من اتخذ هواهو اله هوا مفعول اول هواهو هست مفعول دوم اله هو هست یعنی این انسان چیکار کرده خواهشات خود را نفس خود را معبود قرار داده معبود قرار داده یعنی یعنی یک مسلمان باید تابع معبود باشه او تابع هوای نفس یک مسلمان باید تابع پروردگار باشه اون تابع شیطان است این یدعون الا شیطانن مریده و اتخذ الهه هوا علامه اشرفه لیه تانوی رحمت الله در تفسیر بیان القرآن می صورتش اینه که هر چی که در دل بیاید علمان و عملا از همو اتباع می کند مثلا تو دلش میاد یه خرافه میآید. این علمان شد بعد عملا از همون چی می کند؟ پیری این کار را بکنم اون کار را بکنم هر چی که دلش میگه در حالی که مسلمان باید هر چی کتابش میگه خدایش میگه افر ایتم انت اخذا هوا و و اضله الله در حالی که را خدا گمراه کرده علایلم بر علم میداند و ختم علی سم می داند هدایت نمیشه خدا چون مرد زده محرومش کرده و ختم علی سمعه و قلبه الله محرزه بر گوشش بر قلبش و جعل علی بصره غشاوتا و قرار داده الله بر چشمش پرده فمن يهديه من بعد الله چه کسی این انسان گمراه را هدایت می کند بعد از الله وقتی که الله او را از هدایت محروم کرده چه کسی او را هدایت می کند اف لا تذکرون آیا شما پند نمیگیرید؟ گیرید پند باید بگیریم چه چی چیزی باعث شد که این بیچاره در محرومیت بماند اینکه که دنبال حوای نفس و خواهشات نفس باشه وقتی که دنبال هوا و خواهشات نفس باشه منکر توحید میشه منکر توحید که بشه منکر معاد هم میشه این مرز دومش دو وقالو ما هي الا حياتنا الدنيا آنان میگو ان نیست این مگر زندگی دنیای ماز نموت و نحیا در همین دنیا ما میمیریم و در همین دنیا زندگی زنده یعنی موت و حیات فقط در دنیاست. آخرتی دیگه نیست و ما يهلكنا الا الدهر ما راهلاک نمی کند مگر زمانه زمانه یعنی گردش زمانه ببینید دهریها امروز دهریها منکر خدای عزوجل هستند همه چیز را به زمان و به طبیعت نسبت می دهند اما در زمان رسول الله صلی الله علیه و آله مشرکین مثل دهریهای امروز نبودند همونطور که ما در مقدمه در مسئله علاخان دیم، اونا هر چیز را مؤثر میدانستند. خدای بزرگ خدا را میدانستند. اما خورشید را مؤثر میدانستند، ماه را مؤثر میدانستند، ستاره ها را مؤثر میدانستند، جنات را، فرشتگان را، انسان های بزرگ را. یکی از چیزهایی که می گفتند تأثیر گزارس مؤثر از اس زمانه است. زمان را هم موثر میدانستند. پس این که میگه وما یه لکنا الا در گردش ایام معنیش این نیست که منکر خدا بودن. جنانچه علامه علوسی نوشته و هاولای معترفون به وجود الله اینا به وجود خدا معترف بودن شما خاندید تو همین مسئله اله حتی نماز می حجم حج می رفتند روزه روز آشوره رو روزه می گرفتند. خودشون رو بر فطرت سلیمه و بر فطرت ابراهیمی میدانستند همه دستورات خدا رو به زعم خودشون انجام می داتن. پس به این معنا که کمونیست باشند و دهری باشند نه لذا می فرماید هاولای به وجود الله فهم غیر دهریه پس اشکال کارشون چی بود؟ والکل یقول به استقلال دهر به تأثیر میگفتند همونطور که بقیه مخلوقات بزرگ و مظاهر قدرت خداوند تأثیر گزار هستند میتونند که سعادت ببخشند شقاوت ببخشند خیر بیارند شر بیارند زمانه هم زمانه همچنین زمانه چینی هست خیلی امروز هم هستند که زمان را تاثیر گذار می دانند اینا به نوعی از کنم که دو چهار خرافه هست مثلا بعضی هستن فلان روز را اگر یک حادثه ای در فلان روز بیفته بدشگونی می کردن بد می کنند. بعضی اگر مواجه بشن به عددی مثلا عدد سیزده بد می کنند یه جای تو هوای پیمای دیدم تعجب کردم که افرادی که از کنم با سواد هستن دانشمند هستن اونا چرا دوچارین خرافات هستن ردیف صندلی ها یازده دوازده دوازده به اضافه یک چارده یعنی سیزده را ننوشته بودند بعضی این قدر یعنی هر چیز را تاثیر. بعضی ها زمان را فلان روز روز چندم تأثیر دارد لذا نباید تو خونه ها باشیم بریم بیرون اینها نباید اینها زمان را موثر می دارند در حالی که خالق زمان و موثر در زمان الله است ایام تمام ایام الله هستند هیچ روزی فی نفسی نحس نیست و فال بد نباید گرفت البته نحس برای اون انسان هایی که تو اون روز بدبخت میشن عذاب میاد چرا في ايام نحسات هم. اما همون روز برای مؤمنین چی هست روز با برکت چون مؤمنین نجاتی یافتند دشمنانشون هلاک شدند بس فی نفسی نه روزی نه زمانی نه شبی نه عددی نه چیزی دیگری نحس نیست البته یک نکته خدمت شما عرض کنم که فال خوب گرفتن نیکفالی اشکالی ندارد چون از سنت ثابت است آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم گاهی نیکفالی می گرفتند یعنی با یک واجهی با یک ای با یک نفری با شخصی مواجه می شدند و فال خوب می گرفتند مثلا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم در حدیبی تشریف داشتند و منتظر بودند که فرستاده مشرکین بیاد و چی بکنه؟ مذاکره بکنه به رسول الله خبر داد یا رسول الله از طرف مشرکی نماینده امد گفت کی آمد گفتن سهیل ابن عمرو هزا همین اسمش رسول الله فالینی گرفت گفت پس خداوند کار ما را سهل می کند خدا کار ما را آسان می کند سهل می کند لذا گاهی انسان یه جمله می بیند ناخداغا نه نا اینکه با قرآن فال بگیرد ناخداغا یک آیه از آیات قرآن می بیند فال نیک بگیرد اشکالی ندارد پس اینکه ما بگیم فلان چیز تأثیر بد دارد فلان زمان دارد نه اینها هم معتقد بودن مشرکان نه اینکه معتقد باشند که خدای وجود ندارد فقط اصر و است بلکه زمانه را تأثیر گذار و ما لهم بذالک من علم خداون میفرماید این خرافات را دارند چون علم ندارند دانش ندارند اینهم هم الا اینا نیستم مگر گمان میکنن یعنی هرچی بر اساس چیشون هست گمانشون هست و اذا تطلع علیهم آیاتنا بیناتن ما كَانَ حجتهم إِلَّا أَنْ قَالُؤْتُوهُ بِآبَائِنَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ زجر و سرزنشی دیگر چونکه انها دلائل را قبول نداشتند منطق را قبول نداشتند استدلال را فقط اناد هر گبر آنان تلاوت میشه آیات ما ما کان حجتهم نبود حجت انها دلیل انها الا ان قالوا مگر گفتم بیاورید با ابا اینا پدران ما را ان کنتم صادقین اگر راست میگویید خداوند جا فرماید مگر زنده کردن مردها به دست پیامبران است نخیر پیغمبر نمیتونه مردہ ها زنده بکنه قل الله یحییکم ثم یمیتکم بگو الله فغنده میکند نہ بنده خدا و نہ دهر لا دهر ثم شمارا خدا زنده میکند ثم یمیتکم يحی... سپاس شما را می میراند ثم جمعکم إلى يوم القيامة سبس شمار جمع فرمايت بروز قيامت من في يوم القيامة شمار جمع كنت در عن قيامتك لا ريب فيه هيت شك در وقع قيامت نيس ولكن أكثر الناس لا يعلمون أما أكثر مردون نمي دانت متوجه نيستن خب إن دليل سفو مبوت و تبصیره بر این دلیل سوم بر مشرکین که اونها چه خرافاتی داشتن دلیل چهارم اقلی و الله ملک و سماوات همون همونطور که خود آسمان و زمین برای خداست تصرفات در آسمان و زمین پادشاهی آسمان و زمین قدرت در آسمان و زمین هم فقط و فقط برای خداست لام لام اختصاص اختصاص به خدا دارم چه مخلوقات در آسمان ها هستن فرشتگان در زمین انسان ها جنات معنیش اینه که اینها ها تصرفات ندارن چون لام لام اختصاص لله لا لغیری نا ملک نا انسان نا جن تصرف ندارن و یوم تقوم الساعت و یوم اذن یخسر المبتلون حال ان دلائل را که اهل باطل قبول ندارند، خداوند برای انها وعید بیان می فرمید تخویف بیان می فرماید و یوم تقوم الساعت یوم اذین یخسر المبطلون. روزی که قیامت برپا می شه در اون روز یخسر در خسار واقع میشن. شه یعنی تبین خسرانهم قبلا قاندید یعنی خسارشون ظاهر میشه. المبتلون هم الكافر إنسان هاي باطل وترى كل امه جافيه ميبني هر گروهي راك بزانو افتاده بدليل عجز بدليل ناتواني وترى كل امه جافيه هر گروهي را ميبيني كه بزانو افتاده کل امت تدعا الى کتابها هر گروه فرا خانده میشه دعوت داده میشه سوی کتابش بسوی نامه اعمالش و گفته میشه اليوم تجزون ما کنتم تعملون امروز شما پاداش داده میشوید آنچه که شما عمل کردید بر اساس عمل کردیتون قانون خدا همینه فضل خدا من فرق میکنه هذا کتابنا ينطق بالحق این هم را از کجا جام فرمودید؟ این همه اعمال من ریز درشت مال این الكتاب لا یوغادر صغیرة ولا کبیرة الا احصاها نکو تکی مند نبو زرگی هم را قلم بند کرده هم را جام کرده از کجا؟ الله می‌فرماید: این کتاب من ینتق بالحق این کتاب ماست کتاب یعنی نام اعمال پر که به حق سخن میگوید راست میگوید کج نمیگوید خلاف نمیگوید این نا کنانستان ما کنتم تعملون همانا ما بودیم می نوشتیم می نوشتیم یعنی دستور نوشتن داده بودیم کرامن کاتبینی بود که اونا می نوشتن ما دستور نوشتن داده بودیم ما کنتم تعملون آنچه که شما عمل می کردید ما اعمال شما را که عمل کردید دستور دادیم بنویسند فاما الذين امنوا وعملوا الصالحات حال تفصيل ان و وتوزيع ان جزاء الله تعالی اعلام نتیجه می فرماید هر امتحان یک اعلان نتیجه ای داراست همه امتحان دهندگان منتظرند که کی مقبول میشه کی مردود میشه اما خدای از و اینجا مدار را بیان میفرمائید مدار مقبولیت چیه و مردودیت چیه فَأَمَّا فا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ایمان اعتقاد عمل صالح هر دو امباشن اما کسانی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند فَيُدْخِلُهُمْ ربهم في رحمته این سمره تعمیل سمره عمل کردن رب اونها را داخل میگردن در رحمت خاصش ذلك هو الفوز المبين. این فضیلت بهشت است این هست این هست این فقط این رستگاری بزرگ رستگاری آشکار این انسان دیگه آشکارا و الانا کامیاب شد رستگار شد تخویف خرافی و اما الذین اما کسانی که کفر کردند منکران مشرکان به اونها گفته میشه یقالو لهم افلم تكن تکن تطلع عليكم، طلاع آیا نبودی تو که آیاتم بر تو طلاوت میشد بر شما خانده میشد فستکبرتم گروه شما کلن تکبر کردید عناد از خود نشان دادید و کنتم قوما مجرمین بجای عمل صالح بجای انقیاد بجای اطاعت شما قومی جرائم پیشه بودید یعنی کارتون جرم بود قوما مجرم ببینید انسان به رحمت خدا امیدوار میشه مجرمین اونایی که کارشون جرمه الان یک کسی یک بار انجام داده بعد توبه میکنه بحث اون نیست بسی اون هست که کارش جرمه وظیفهش جرمه همش دزدی میکنه، همش علیه عزو بالله بی افتی و زنا می کنه مشروب میخوره. طول زندگی و کنتم قوما مجرمین جرائم پیشه لذا اونجا کارت این بود به قیامت اعتقاد نداشتی به زنده شدن بعد از مرگ باور نداشتی و اذا قيل ان وعد الله حق هر جا گفته میشد همانا وعده الله حق است و ساعت و قیامت لا ريب فيها هیچ شکی در وقوع آن نيست شما چه جواب ميدادي يادتون هست گفتم ما ندري ما الساعه ما نميدونيم قيامت چيه قيامت را باور نداریم اِنَّ نظن الا ظنا و ما نحن بمستيقنين ما گمان نمیکنیم مگر گمانی و ما یقین نداریم تفسیر این چیه گو... که گمان نمیکنیم گمانی ببینید از کنم که تفسیر درست و مفهوم درست آیه اینه که اعتقاد به ندارند مشرکان کافران اما چون مسلمانان بهشون میگند دعیان میگویند دعوتگران انبیا علما قیامتی هست بترسید خدای هست زنده شدنی هست یک مقداری شک میکنند مردد میشن شاید باشد همون تردد را همون که کمی متردد میشوند همون را تعبیر میکند که شما اونجا میگفته این نزنو الا زنن شاید قیامتی باشد ما گمان نمی که در حد یک گمان است. در حد که احتمال ضعیف و خوشبین هم بودند تو سوره کف است مشرک میگه و ما از نصاعت قائمتن من قیامت را فکر نکنم قائم بشه ولی این تو اگر بالفرض قائم بشه من برگردانده شوم. اونجا بهتر از این خواهم بود وزم توب میشه وزم از این بهتر میشه لذا الله میفرماید ان زُنُّ اِلَّا زَنَّا پس زن و تصوری که گاهی در دل ایجاد میشه ما گمان نمیکنیم مگر گمانکی یعنی گمان اندک و ما نحنو بمستقینین ما به وقوع قیامت یقین نداریم باور نداریم و بدالهم سیئات ما عملوا پروردگار می فرماید ظاهر میشه آشکار میشه برای آنان سیئات عمل کردشون عمل کرد بدشون چون وقتی که انسان به قیامت اعتقاد داشته نباشه عملش هم بد میشه این اعتقاد به قیامت واقعاً یک لطف بزرگی هست و یک کمک بزرگی هست برای عدالت در روی زمین این نکتر توجب فرماید از نظر عقلی میخوام بگم از نظر عقلی اگر در دنیا آرامیشی وجود دارد در دنیا در بعضی جاها اگر عدالتی هست این عدالت بدلیل چیه؟ دلیل؟ اعتقاد به قیامت است چون انسان ها بیشترشون اعتقاد دارند حتی همون یهودی ها مسیحی ها به نوع اعتقاد دارند گرچه اعتقادشون اعتقاد نادرستی هست برداشتشون از قیامت یک برداشت نادرستی هست همه همین اعتقاد باعث شده که مقداری انصاف هنوز باشد چون اگر اعتقاد به قیامت نباشد انسان راحت جرم میکند جنایت میکند چپاول میکند ظلم میکند مال دیگری را بالا میکشد اینها راحت میشه اما چون اعتقاد هست کمتر از این جاهایی که این اعتقاد ضعیفه گرسی اللہ مندوی رحمت الله علیه نوشته که عملکرد مردم امروز نشان میده یک ارتداد عمومی هست نسبت به قیامت عموما مردم باورش ندارن به همین خاطر میبین نماز نمیخوانن دزدی میکنن شراب میخورن کلابرداری میکنن هم دیگر را میکشن ولی خیلی ها هستند که شما میری بازار شما را فریب نمیدن نسبت به شما ظلم نمی مال شما را راحت میتونم نب... می بالا بکشن نمی کنن. همه این که در زمین حتی ما راحت هستیم بخاطر امون اعتقاد قیامت هست بس این اعتقاد قیامت نعمت بزرگی هست اینها مشرکان هر نوع ظلمی می هر نوع کفری می هر نوع جنایتی می کردن چون که می گفتن و ما نحنو بمستقینین ما یقین نداریم اینجا میگفتم ما یقین نداریم اما اونجا در برشون ظاهر میشه و بدالهوم سیئات ما عملو سیئات آنچه که عمل کردن برشون آشکار میشه و حاق بهم ما کانو به استحزیون فرود می آید بر آنان نزول میکند بر آنان آنچه که مسخرهش میکردن چرا مسخره میکردن عذاب را گفته میشد عذاب خدا میاد میگفتن زودتر بیارید از بس که باور نداشتن لذا اونجا بهشون گفته میشه که همانطور که شما در دنیا فراموش کردید فرمان خدا را حکم خدا را امروز شما هم به فراموشی گذاشته میشه خدا که فراموش نمی کند یعنی با شما همون برخورد میشه با شما همون رفتار میشه و قیل اليومن ساکم کما نسیتم لقاء يومكم هذا گفت میشه ما شما را فراموش میکنیم یعنی ما شما ببین نتیجه فراموشی چی هست ترک کردن به حال خود گذاشتن همان که شما فراموش کرده ملاقات روز را لذا نتیجه و ما وكم النار جایگاه شما آتش است و من ناصرین برای شما هیچ نوش شفاعت کنندگانی و سفارش کنندگانی وجود ندارد نفی شفاعت قہری ذالکم بانکم اتخذتم آیات الله هزوا این چرا اتفاق میفته چرا واقع میشه اولین سبب سب از کنم که استهزا و انکار هست استهزا حق؟ این به سبب این هست این عذاب این گرفتاری که به بس سبب این که شما گرفتید آیات خدا را به بعد مسخره چی چیز باعث شد این مرض بود نه مرض مسخره کردن اما علت مرض قرآن مجید اکثرا هم مرض را بیان می هم علت را بیان می هم بعدا نسخه می پیچد. علاج درمان مرض شما تمسخور کفر انکار علت چی؟ و غررت کم الدنيا. شما را فریب دا زندگی دنیا یعنی انسان انقدر غرق دنیا است و شوقمند دنیا است که به دیگه چیزی فکر نمیکنه کنن نه به خدا نه به آخرت نه به پیامبر لذا از همین نوع دنیا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم پناه خواست و تجعل دنیا اکبر هم منا بزرگترین هم مغم اگر دنیا باشد خدا فراموش میشه آخرت فراموش میشه برای مسلمان هم این خطر است فلی لا خرجون منها ها ولا هم يستعتبون. امروز اینها از اون جهنم خارج کرده نمیشوند ولا هم یاعتتبون یعنی عذر اونها هم پذیرفته نمیشه از اونها عذر یعنی پذیرفته نمیشه عذرخواهی بکنند اگر عذرخواهی هم پذیرفته نمیشه خاسته نمیشن سین برای طلب است خاسته نمیشه از اونها که عذرخواهی بکنند و اگر بکنم پذیرفته هم نمیشه چرا؟ چون جای عذرخواهی اینجا نیست جای عذرخواهی کجاست؟ دنیا علامه قاضی سنعالله در تفسیر مذهری نوشته ای لا یطلب منهم ان یردو ربهم از این کافران خواسته نمیشه که ربشون را راضی بکنم با معذرت خواهی به توبه که اونجا توبه بکنن لفوات اوانهی چون وقتش تمام شد وقتش گذشت وقت توبه کجاست دنیا هست پس ولا هم یستعتبون از اونها طلب توبة وطلب عذر خاهي نميشه فلله الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمين ان دليل پنجوم هست عقلي اما قبل از دليل نتيجة دليل ميات وقت كه رب آسمان هست رب عرض هست رب عالمين هست حمد فقط براه او اما چند بار ارز کردم الله الحمد این را این طور ساده ترجمه نکنید حمد و تعریف برای خدا نه شیخ بزرگوار می فرمود که هر حمدی مراد نیست این الحمدلله بزرگترین ذکر توحیدی هست و بزرگترین آیه توحید هست الله الحمد لام لام اختصاصه هم لام لام اختصاص هم تقدیم جار و مجرور حسر میاره پس باید اینجا دی مد نظرت باشه تعریفی مد نظرت باشه که اون تعریف مختص خداست برای کسی غیر از خدا اون تعریف جایز نیست کدوم محمد به قول شیخ رحمه الله شیخ حسین علی اون تعریفاتی که مختص علوهیت هستند. پس برای اللهس تعریف تعریفی مثل خالقیت مثل رازقیت مثل نافع و ضار، مثل حاضر و نازر مثل مشکل کشا و حاجت روا مثل عالم الغیب این تعریفات فقط و فقط برای اللهس اون اللهی که رب آسمان هاست اون اللهی که رب زمین است نه تنها آسمان ها و زمین تخصیص نیست رب العالمین رب تمام جهانیان است بس برای اون الله فقط حمد و بس و له الكبریاء فی السماوات والارض انبازم تقديم موجب حصر است بزرگی کبریایی عظمت فقط و فقط برای الله است هم در آسمان ها و در زمین یعنی اهل آسمان ها هم کبریا برای خدا میدانند فرشتگان و اهل زمین هم و هو العزیز الحکیم و فقط اون ذات حس عزیز غالب و هر کارش با حکمت است اگر یکی را می‌زند به قهرش گرفتار می کند هم از روی حکمت است و دیگری را اگر مهلت میده هم از روی حکمت است صدق الله مولا